والحمد لله على نعمته يا محمد باخري بحث واجب اجماع بود در صحبت دیگمون بود این دی زیادی از قدما اسلام اجماع و مسائل اصلی و هرچند تاقم ادله رو که اقامه کردن نه حالت روایات شیعه بای خودشون انصافاً تمام نیز از دلی واضحی بردام هم ادهی از که خیلی بقول خودشون متقیده به کتاب سنت هم امثال ظاهری که به نهلی فکر شدیده اونها هم اجماع رو رد کردن قبول نکنم البته شیعه هم دلاشتال جزو هم نایید که اجماع رو قبول نکنم در میان اهل اسلام به طور کردی خب یک رعی همینه که اجماع و جید نداره رو جد کتاب سنته و اتفاق خواه ها و عدم اعتبار خواه ها تحصیل داره جد نداره و در مقابل هم مشهور علمای اهل سنت اجماع رو به عنوان که از مسادر تشری قبول کرده در مقابل کتاب سنته در مقابل این دو معروف محروف باز رعی کسا نیست که خبسه غیر از آرهای صغرهی ادهی هم پشاید هم که اجماع محتقه دارن حالا اونو ما دیگه وقت صغرهی رو مذهب نمیکن اجماع خصوص صحابه را ربوی کردن مثل ظاهری ها هم از از اجماع صحابه که ظاهری ها ربوی کردن صغره هم چند بار اشاره فرم اشکال که چرا خودشون ولیی ملتزم نشود مثلا اگر یک مطلبی را دو دو تا سه تا چارتا تا صحابه نروی میکنه عبدالله بن یا آدمی و مومنین یا مثلا عبدالله بن مسعود میگن یا علم یا عرب یا مخالفون اجماع با نظر 2 تا سه تا یا, یا چهار تا صحابه چون نقل مخالف نشده میگه اجماع حاصل میشه لذا در مبنای ظاهری ها اشتهار صغری خیلی حالا اشکال ککرویش اشکال صغربیش خیلی زیاده یعنی من در این کتاب نهل چون نصف محنوس همون دنشاطی پنشیت ها با این کتاب مراجعه دارن خیلی دیگه ها ادعای اجماع صحابه میکنه که در حقیقت مبناش با فرحال زحیبه یک دو ساسته تا صحابه رو گفتم یارف لما این کافی نیست برای دعوای اجماع این هست راجع این این برنام مبنای مالکی هاست که خصوص اجماع اهل مدینه رو با خاطر تعبد خاصی که دارن خود جد میدن چون شد شده خوبی هم بینا مالکی ما قابل قبول نشده مالکی ها اون دارن نمتقی بود نه مستر نمت در ولی به زمان صحابه هم نیست ما بعد در هر زمانی این فوق اجماع رو بلن. از زیدیه ها هم نرد شده هم در اصولشون من دیدم هم در کتاب دردیشون مثل کتاب فرسیم مثلا بخل فخار نرد شده که اجماع اهل به اجماع اول افره به اول افره حجت میدن از شده که اجماع عام ما سراندار هم حجت خصوص اجماع اول افره رو می و نیست فهمیدن که امامیه حالی به وجود سرمون ما اما ایجوان را به جای نگاه میکرد بیشتری که از روایه‌های مهم می‌شوند در اصول، عمدش هم همین روایات بود. آیات رو خیلی قبول نکرده بود، اما روایات رو چرا را در ترجمه امام تعبیر کردند، مثلا همون رادیو تکذیل ها زیدیا هم همون را می‌کرد. مذاکره می‌بینی که ایجوان اثرش رو به خاطر آیت هکیل النما جبریل زیاده برد کنون رشت در از قبول می هم اینا دیر زیاد شد معتقلا کسی که کسانی که از اولاد حسنین باشه مورد از از غیر اولاد حسنین رو اعتبار نمی سوالات حسنی و حسینی به اصطلاح اجمعه ایتر یہ قول دیگری پس یک در حدود پنج قولی در مسئله شد عدم حجیت حجیت حجیت خصوص اجمال صحابہ اجمال فقهاء اهل مدینه به شما اعتراف لوی از اجمال و عدم حول حجیت و اثر دین سے در روایات ما یعنی در خط ما در اصول ما مورد بحث قرار گرفت در یکی از کتاب های دیدم که نوشته علت اینکه که امامیه اجماع را قبول نکن خیلی از اقالیدشون خیلی از اقالیدشون با اجماع مسلمان ها لذا آمدن اجماع رو گفتن عجب نیست خب اونم که از اون خدمتون که حالا چونم بحثه سغربی توی زیاده اونا رو با خودش تا اینجای کار این بحثی بود که ما رسیدیم و هر به بحث روایات خود ما و صحبتی که هستن باید کتاب های ما روایات ما ما منشه این ادلاع کرافی کتاب رو نسنه ریاد دارید احلبه و این بوده که باید مستنده به کتاب یا سنت همین شد همینه همیزی که ابنه هر دیمیزنه ابنه هز رو که احلبه های نسنه ابنه هزی کرارا تکرار میکنه ما فرقناه کتاب منش این که دلیل شو میگی نمی‌شنه آراء تمام علمای عامه چیزی ارزش نداره تا کتاب و سنت منتلینشه بود آراء و اخبار ثقه ها هیچ ارزش خاصی نداره این همون ما داریم. اون بحثی که ما دیروز مطرح کردیم این که در دوران نصوص که اصطلاح دوران نصوص می ما از بعد از رسول الله شروع میشه تا حدود سالهای 300 تا 320 312 که طبیعات هم به نظرم طبیعات همیری به نظر ما را اگر با تو این کسایی تو این برنامه خاکیسه نباکنه آمده به نظر طبیعات همیری تاریخ 309 اگه من اشتباه نگرده باشم طبیعات محمد عبدالله همیری به نظرم آفین طبیعات تاریخ 309 بگر دقیق طبیعات که تاریخ ندارم اما این طبیعاتی ایشان که تاریخ داره 309 حالا اینکه ا فکر میکنم مثلا حد نصوص رو تا حوض سالهای های سال و پونزه توی قیبت سهره بر توقیاتی که از این ما موسیقی رسیده این دوران نصوصه واسه دوران متون روایاته در این دوران ما یه تحریب رو ارزترین اون چه که ما آن داریم این اخسام یکی که که به اجماع در شبه مسائل اقالی این واسه این مسئله زیر بنا شون میمتقیم محلی بینقار شما نه در مسئله فرقی. یکی که این حق نسبتا محتنابه این کم نیست یکی راجع این نموش معلی آره ای بفی که دیجای دیگه هم نکنیم همین تربیر محصول به مرور البته یکی روایت دیگر نیست به نام مرکوعه سراره نسبت شده دوشت در سراره در کتاب احوال لاعالی یا قوال لالی به زراره نسالی به کتاب رو فوق عاده ضعیفه اردش اصلا اسم برده نداره در اعداد کتب مثلا قرار شدی درست نیست و قطعا این دو بسیل اشتراح که در بسیل امرو نهندلست از نصف بوده و به رو شده این کنتا که رو با ما رواهی که از زراره در قوم تاروز نداریم وقتی دار نگاه میکنه باید خیلی واضحه که انسان جعفری که در حدیث سازده شهر میرویات عمر رو به ذرا نسبت به ایشان اسناد عمومی که داشیه اجازه عمومی سر راگیری چون سرابازو را انجام داده بودند ایشان داره شما کمی درمیوموه یکسایی توسط اون ایشون مبرد یاد تضبیقات ایشان مفید نزدش ابن جمهور درست از بردشون بردشون واقعا من نمیدونم جدی که جمهور بودی به ارحال ابن نبی جمهور اقتصایی این رو منفرد نهاد کرده و ارسل این کتاب و عواضی ضعیفه که مثلا ارزش نام بردن در همون دوره اول تا هم اصلا به روات نخوندیم چون آمین ازشون روات رو اردن نسبه که روات ملاقیه روات حساب کردن این که باشون فرق ضعیف و مجبوله ارزش این که مثلا وقت خودون رو بگه رو بندازی دو دقیقه که بیم این اصلافش با نه. پس اونیی که ما داریم فیلم, مجمعه داره فیلم در مجمعه یاریوی فیل فیلت مونه اثر دروت امره در هم توضیح شدهش به مراد مطلق اجبانی دارم احتمالا مراد شهرته و لازمش این نیست که در محروض کلام هم اجماع باشه چون برزیاد اینجور تصور کردن تعبیر به اجماع در این روایت بگاهشون در خبر رواید این محنم که مثلا در اهل کوفه دو حدیث از امام صادق نحوش شده خوب در بکنید یک حدیث رو ده نفر محرکنن یک حدیث رو یکی از اون ده نفر محرکنن بس حدیث اول مجموعان علیه حدیث دوم درون چانسه اینجور محنم برنم مجموعان علیه لاردفی. یعنی یک حدیث محتفظان علیه یک حدیث رو یک نفر از اون ده نفر محرکن حدیث معارضه پس اون نیشه مجموع ندیم بعد این این خلاف زادره حالا این میاد ظاهر اینطور نیست که ده نفر یک حدیث را یک نفر را دونده حدیث را, را معارض این خلاف ظاهر که ده نفر یک حدیث را یه نفر یک جدادانه حدیث را معارض ندرد ظاهر نیشه این شهر خود به مشته 16 داری نرسخابه و در شازن نادر و در شازن نادر یعنی ده تا یک ترم این یکی یک ترم خب درفت کنید چون که با مجموعه بسازه لیکن انسان ها خب بذاره خود ما شهر ده و در ایش نادر که این مجموعه لیلا کاملا واضحه که شازن نادر در مقابل شهرته نه اینکه یکی از افراد اونه جز افراد اونید ساله برحالی شده چون توی بحث ش این دو مورد یک موردی هم که در باب میراث، حالا مال اخلاوه در احکام آن فلان و جاری دیریم داریم. اینا موادش ارزش خاصی ندارن ما بحثوش زیر بنای فقهی و اصولی رو بسوکره نمیشه. این سه موردی مورد هم داریم که امام فرید زاده تفکر کل مرجع برنا که از کلام امام شبیه اجماعت مالک در واقع کرد. این هر دو خیلی کامل دیگه انصافا احتمال شبه تقریب دوش هستون امام شده شده شده که اجماع علمای مدینه در عرض و فرافه شبه تقریب هست این هم چندان ارزش علمی بیداده میکنه میمونه اون روایت امام خادی لا تشته که علا ظلاله تو خبون هم صندهش و مصدر زعیف هست که نداره خالی و مصدر خالی است، اشکال نیسته و بعد هم امام در اونجا یه که دارد که داره که که این اجماع مراد نشده از اجماع ما اجماع فقهی نیست به فرمی ده برگردوندنش که مراد تلقیه و قبول در امته مثلا این حدیث تو امه نه و اینکه رسول الله تعالی فرض می کنه که مصالحین یا تارک فرض می مراد از اجماع بی این کل اون چیزی که ما الان در نصوص داریم که ممکنه در بابه اجماع شون نگرد که سیگه متعرس شده باشه من تکرار تقرار می کنم روی خاصیت پوایدون افیل ازا این سؤال اصلی اینجا مزرح میشه چون از اصولی این ما مزرح کرده باشن پس چطور شد اصحاب ما این مسئله رو گرسن که اجماع رو برمان کاشه از قوله ما یعنی اون سؤال اینه آیا ائمه پر اجماع اجموع اگر کاشم از خود ایمان باشون خود جده پر نیست؟ سؤال خوشتنشون مثلا ظاهری ها بیان اجموع سؤالاشون کاشم ارسانه اگر این معنا قبل از امام محادی در دوران قبل از ایمان به این مسلمان وجود داشته کاش هم آیا این ممنا که مرمون سه مونزا و شکر و حدی اجما رو یک نحوه دنباله یک نحوه کاشفیه و رابطهی بینه اتفاق خوبه ها و بین قبوله هم قرار داد این آیا در این دوران آمده گرده دوران دورانشان معین کرده کی از خوبی هایی که ما در ارخواستون داریم تحلیل میکنی معین میکنیم یعنی از زمان رحلت رسول اکران زمان تا این, این نقطه ایست بعد هم نیستوش خشک بکنید از رحلت پیغمبت تا سال 35 هجری که رسمن متصدی حکومت شد، کلمات کمی ازشان نرمی شده تو خود نجربال آرام هست اگه دقت وقتون برداد کلماتی که مثلا در وقت دفن هده زباس آنون داری تو نجربال آرام هست کلام اصولا تونا اهل ولایت دقت بشینون چه چیزهایی این تاثیرینه یعنی قبل از صدبه خلافت باشه نسبتا چند خود به حضرت که ظاهرا باید در دوران خلافت باشه خب خود در اصل این بود به این سمت صحبت میونه نداره مثلا برای عمر دست دادن خاصی به به عمر مصطفی چیزی یه چیزی ناریکه کردن که در وقت مرگ عمر مثلا کلامیش رو قرنه خب فرمید اگر راست باشه لله در و معلوم هم مال حضرت و اون فلان تو اونجا چی بوده حالا اون بحثه خودش قرد در مجموعه این احضر اگه یاد از اون مراجعه بکنین و کلمات این میرون تاریخ برگی که تاریخ ما بین تا اون زمان نسبتاً کمه داری ما خود ما داریم که از این مصحب بمرشن خودمون قبرونه که از این خود ما داریم ایران و پیغمبرم به هر حال، اون چی که ما هده از امیرو داریم به اسم و سم کتاب غذاب و سنور برایاتینا بیشتر مال دوران کوفه است. حالا ما فرض کنیم از همون دوران ده سال در یه جی تا سی ست در این مجموعه به سات دوران نصوص ما در بین اصحاب ما مجموعه دوران نصوص تا سی ده، در کونزه از این که در بیستونو وقات نایب چارونه جای خودش مجموعه النصوصی که ما داریم در این در این مجموعه نصوص ما راجع به اجماع چیزی همین یکی من 5 تا ذکرمون باشه غیر از این 5 تا 45 تا ذکر کردم علاوه اون که ذکر کرده دیروز این دلیل تایحییریه که به حساب ادبی کردن در انزه مولا کردن در داخل استفسار reference 123 در استفاده کردن چیزی راجع به اجماع گفته نشده و راجعه اینکه که مثلا چرا اجماع وجهت باشه و او دراجی دراجعه که ما فقط از کتاب و نه و راه ما فقط را کتاب رسوم زیاد روایت داریم که نفی اجماع و نفی خیاس و غریب توش میشه اما اینکه که اجماع کاشه که برمانها در مقدار مطرح شد فعلا چیزی پیدا نکردیم خیلی هم برید میدونم چیزی بوده به ما نرسیده خیلی بریده با این مراجعاتی که به متون هست خیلی بریده از رفت رازاله یک رازی با ما سابقا کنارم نترین این را رو همیشه در ذهنتون باشه که از روهای بسیار خوب برای ما که بفهمیم نصوصی داشتیم ولو به ما نرسیده یکیش اینه که حتوای قومی ها باشه یه صبح فبار باشه اگر صبح فبار بود خیلی احتمال داشتیم چیز نزدیک نمزی که این نص بوده و رو به ما نرسیده همینوز ععرف کردیم مثلا در تشاص داره و ش در نرییت نی منرسسی جای دیگه هم ندا منخصه در تاخور اضافه. الان ما این تعبیر رو هیچ جا ندیدیم اینجا س خود و که چون که خوداضاف تو قلعازم به احتمال غی نصی بوده تو به ما دررسیده یکی از راههای بسیار خوب درشییه در, در, در, در فردی هم نیست و هنتی و ها نیستن یکی از راههای خوب برای عای که من محجبی در نصوص بوده و ممکن است همون نصوص هم شده به ما نرسیده وجودش در فتابه قرنی هاست اولش هم در توباره زن فتابه علیه مبابه رحمه پدر سرون خود سرون این خیلی مهمه چون اینها کاملا حاملا بودند در تبر نصوص دیارن الان ما در تقیید و در کتاب شیف صدوق روایه داریم که عمل نکنه از خیلی زدیفه خیلی یک مدن عجیبی خوک و پاکی موی خوک و اینها کسی که امید صدوق نگمویده لیکن قطعا اینا عصی داده قطعا اینا حضی شدن بلکه بالاتر گفتیم چیزهایی که جنبه تعبود دارده و در غیر سفاریزا این ها ظاهره ظاهرن مثلا در کتاب مقنه شهر مفید و نهایی شهر تودسی در لایحه به اون نجر. این قاعده کلی لایحه به اون نجم این رو در خوب در قطعه کنیم سنی ها اما تصدیل کرده مثلا پیغمبر یکی دو تا از نجمس ها رو گفتن باید نجمس رو به بقیه رو یاد کردیم تصدیل دارن ما, ما الان اما این فتوا تو کتاب شیخ توسی آمده تو کتاب مفید در مامونه آن ما یقین داریم نهی یقین یک درسن یقین صد داریم چین چیزی رو باید نواشه فتا نمید یعنی میده که داریم که شیخ و شیخ مفید مثل سنیانیست که در دو نجیس تواهید بیاد بقیه رو خیاس بکنن یقین <تصحیح> داریم بگرد بکنن رضاهایی برای اینجا خوب دقیقت کنیم همین مطلب چیه که صدوق هم نرانه اما خیلی هره مخواستم به سال بسه کنم چرا گایی مطلب تو امیانه میگن تو بغدادی هم میار. بازم ما اونجا یقین پیدا مکنیم روایت موفید یقین پیدا میکنیم روایت داره چون شعن شیخ سستوسی و شیخ موفید رو عجل از این بدون روایت چیه مطلب رو بگن چون از کرد یوا دانش خود هر شب نمیگن میگن در دو ساعت ناجی ساعت بغیض قیاس کردیم اونا که صدام در میونه این کار با قطعا فقهای ما نمی کردن یعنی قطعا نه احتمال ممکنه ممکنه ازن تو کتاب تذکر اعلام بیاد این تذکر اعلام متأثر به از درسونیان نشه اما قطعا در کتب مثل شیخ مفی و شیخ طوسی این قطعیه ما که چه این مسئله‌ای تا روایت نباشه الانم نداریم روایتو قومی هم ندارن از این که قومی من ندارن یک کمی اتفینان پیدا میکنی که روایت نبوده قومی ندارن من اون شیخه تو بود چرا شون بعدها بعد از مدتها کتاب فبر رزا که کرشت شد، این مطلب تو فبر رزا آمده ببخش مدده در کتاب چیز آمده تو هفته نه, ب... نه این خیلیه لکیفه ها ما تا حتی اوغور رو قرن دهم ده پیدا کردیم فتوای شیخ س... مفید خوب در قطع این خیلی روی نقاط تاریخی در سه خیلی در قطع چون این یک باق نید یعنی فتح همین ها الکبا ببینید ما روایت در قرن پنجم آمده شیخ مفید و شیخ توسی فتح دارم دقت قطع میکنی؟ روایت هم ندارم خوبی هم فتح را دارم بعد این فرق با هم و قبول شده انوامه قبول کرده اجای اجماع ترگوده اجماع هم داره ما هیچ راهی هم نداشتیم تا قرن دفع کتاب تو حفل اغول توی دستمارتی این حدیث معروف داده لایزو بیخون لایزو بیخون به تو تو حفل اغول آمده پس من میشه که اصلی داشته از بسر واجه تو حفل اغول در هیچ راهی الان به ما نرسیده یه تیکش توی فبرزاز یکی کشتی دائمه بعضی فتاوهات تو کلمات شیخ توزید دلاخل این روایت به طور کامل دوان نرسه این نشون میده همون صحت نظری ما که این یک اصلی داشته اگر اصل نداشت چون ما میدونیم که ما قفعاً روی خیاس پتا نگیدن این یک جای شوقه نداریم اگر این مطلب رو ما قبول کردیم نه در کتاب ففرزه نه در فتاوه همی ها اصلا مسئله اجماع نیست. گفت <تصفيق> شیخ صدوق آو نگاه بکن هیچگاه در هیچ کتابی در بحث اجماع رو به کار نمی مثلا کتاب سیرمزر بکن هر صفحه 4 بار دلیل نو علی اجماع داره همه که اجماع اجماعش ایشون اصلا بله یک از سرل های عملی ملک تقی دوم ام لاحله یا الشیخ عبو جرفت دین الامامیه تحویرش این بزیگ گفت این دین الامامیه ازایش ماشه فتاهای شخصی خودش نوست که پس منحاج سالیم فتاها به عنوان فقیرشیه نه با عنوان این که اجماعشیه این کلمه دین الامامیه رو یک جا صدوق و امادی داره پس از این که ما میبینیم خب زفت بکنیم از این که ما میبینیم در کلمات و قومیم به هیچ نحوی از انها به اجماع صحبت نشده این معیه در همون نظریه بنده میشه که در روایات ما راجع به اجماع بحثی نبوده. خوبه صحبت بینه سؤال این تردیو که امسال سید و مرتضا میاد اجماع کاشف از خود امامه این خود امام برموده تقریبی آیا این در تششیه اعمال یا مسترام اجماع به این شر بلزه اگر دقت بکنی اصلا در کلمات معاصر معاصر نیوانس و مرحوم نایینی مرحوم نایینی اجماع باید بیه یک گونه ای باشه که رابطه با گونه معصوم ازش شش بکنه اصلا در کلمات قدما نبود اگر مدرکش رو چه اجماع جت اجماع مطلقا میاد مرحوم نایینی اگر مدرکی دل اونجا باشه ولی اون محترم مدرکی هم باشه اج چرا چیزی شبیه ولی اجماع یه شکلی باشه دارای خصوصیاتی باشه که ما بتونیم قول امام رو کشف بکنیم مجرد احوال نیست خب اگر مدرکی در اونجا بود و محتملن و خب احتمالا اون فقها که کردن به این مدرک داشته اصلا این ارزش کشفیت نداره دقیقاً این سوال قبل از الهی سلام مرعونایینی سوال اینه که اصلا از کجا این مطلب اومد اینا روشن شو درسته اصلا این مطلب که اجماع با عنوان کاشیف از قول امام این رو اعمال موزان فرمون در دوران نصوص ما که چیزی رو پیدا نکردیم اونا هایی که پیدا کنیم رو پیدا نکردیم ولی ازاد نتیجگیری نتیجگیری نهایی نتیجگیری نهید که به ذهن یاد قوییم به عکس باشه اول اجماعاتی محقق شد در اون توجیه اجماعاتی رو خب پیدای یعنی که انما شیه شیه بعد از دوران قیبت صغرا در مسائل اتفاق کردن و این اتفاق رو کاشف از قبل امام پر. یعنی اول محقق شد اول تو آمد بعد استنتاجه این خیلی نقصه یکیفیه بعد استنتاجه و اصولی کردم ازان بخص میکنه نه اینکه اول دلیل آمد بعد تصویقش کردم. اونی که ما به ذهنمون میاد از خلاف این قسمت های مبهم تاریخ و ماست هر کسی میتونه با شواهد و منوگی شواهد استضهای بکنه چون اینها گفته نکده بینیم لغتی این, لغت این لغت تازگی داره و باز روش فکر کرد ما به ذهنمون میاد که این مبنا حالا حدود این مبنا چیه دلیلش چیه و چیه مثلا کشف لطف حدس چیه اوناش کارد حدود چیه و در چه حدی این اجماع و چه مقدار باید مثلا اجماع باشه چه مقدار باید اقوال باشه به ذهن ما میاد تمام اینها بعد پیدا شده خب این یک ای مسئله خودجیته با در امره همونستان گفته نه خب چون فرحه چیه مستند به روایات داره این یا، اون ندار که بطرم باز برداره بروایات پس کن مثلا داوود نعلی از خالی یه اجماع از صحابه کاشای از بوده. خب. این مبنون بازه ما تو اینه این بخش نداریم این سوال من دیمه خوب لفت چون ممکنه شما بگی خیلی خوب، درسته غلمای بغداد اجماع رو دیدن چرا شما از اجماع کشت قول امام کردید؟ ممکنه بگید شما از اجماع بید کشف به روایت بکنید نوسته که الان من گفته یعنی اگر در که حرزا فتبای قومی ها آمد مثلا کشف بکنید که قول امامه این نوستید نه همون مودی که دیروز اطریزان اشاره کردن چند بار سالا گفتن مالا محمد امین استرآبادی که به شدت به اجماع عمل میکنه و اولین کسی هم که به اجماع عمل میکنه در چیه؟ خب یکی از فلاسفه میگه اگر قدما فلاسفه این خارجه خود ایشان چون میدونیم قدما روی نصوص فتو تفسیر یعنی خب نیان روشنگ مثلا؟ من روشن شد مطلب من میخوام بگم که اگر این مطلب رو فقهای بغداد فهمیدن که اجماع کاشته سوال کاشف از قول امامه یا کاشف از وجود دلیله کاشف <تصفيق> از قول امام این میشه حجب مثل خبر وارد کاشف از وجود دلیل میشه اول کلام اون دلیل ما باید نگاه بکنیم سردن مثلا ببینیم قابل قبول دقیق کردیم اون زیر بنای این تفکر کجا زیر بنای این تفکر امروز ما بایدتون تحلیل کردیم زیر این تفکر اینه که اصولا آیان کابلن گفتن اجماع کاش میره از کجا گفتن سوال سؤال چون اعمه پرموده بودن تطریق کردم در که ف... چون اعمه پرموده بودن از کلیم با شواره که من امروز روز جمع کردم شواره دیوزم گفتیم امروز روزم جمع کردم و مخصوصا نبودن اشاره در کلمات و ها به نظر من میاد چین چیزی از عمه نقل نشده پس اگر نقل نشده در حقیقت یک توجیحی بوده خود علما انجام دادن مثل حجت خبر واقعی های خود میان حجت خبر از آقلاییه فقط چاره این سری آقلا رو امضا کرده پس در حقیقت این میشه اجماع یک حجت آقلایی میشه که کاش کلی در مسالک ثلاثه ای که غزالی ورده مطلعش سالثش که از مشعقله یعنی اجماع قزو و ارزشش فقط در حد کاشفیت قرار میگیره نه در حد مثلیات مسائل مصدر تشریعی نیست مشخه خبر ورده لزوما نمی‌دونه خودی میفرما که اجماع نمی‌شود مانعوله به خبر واحد هودجات باشه به خاطر اینکه صحیح مثل خبر نقل کلام امام میکنه که به هر حد بعد از هودجات خبر واحد هر میگیره می‌گیره، هر و نظام انتقال در اصولی متاخر وان است، نهون نه این دیگر. تقریباً دیگه متفاوت علیش شده که اجماع اردشش مثل خبر واحد. فقط خبر واحد نقل تفصیلی قول امام اجماع نقل اجماعی، فقطش همیشه ولی بله فرق دیگه نداره. این مسئله سین آیین فرامنده ما اومدیم تحلیلش دادیم گفتیم سر این چیه چرا اینجور فرامنده شده این سه تا روشن شد یک چنین مبنایی در کلمات فقهای ائمه علیهم نبوده دو چنین واقعیتی در تقشیه واقع شده سه آمدن با یک ارتکاز اوغلاجی این واقعیت رو توکیه کردن تفسیری استفاده کردند واقعیت خود اجمان حالا پس کتاب فکر رضا نوشتن که حسین روح رحمه الله از این کتاب رو گفت شلمگانی که فقید بوده آن وقت فقید و بوده نوشته بعد داده به علمای قو، علمای خوب موافقت کردن گفتن چند موردش خرابه اونا هم کردن بقیه شده متفقون علیه بین بغداد با خوب, خوب دقت کنیم متفقون علی بین برداد و قم پس در حقیقت اول اجماع پیدا شد. وحید؟ اتفاق پیدا شد. بعد از اینکه این که اتفاق پیدا شد، بحث سر این شد شما این رو چجوری حجت بزنیم. اینا آمدن روی یک و اوغلایی مثل عجز خبر واحد. گفتن اگر بنابرای شکه شیع در یک زمان رو اجماع بکنه این کاشون در هر زمان امام معصوم هست پس بنابراین این فتوه ای اتفاق فوق ها از قد امام هست روشنگ تو در تو تحبیلی شما پرموزیم به کاشم پیادت که روایت و دلیل میرسیم نه سن همه اشتا این همه مناغشه این وقتی هم روشنگ تو این که پس اون خودم ها قاضی دخول یادشون گفتن نه هست معلوم شد اصلا اصل مطلب خیلی واضح نیست کار دوباره قاعدش میکردی چون بناسیه کاشف باشه این درماز کلام کاشف از حول پوره... یا کاشف از وجود دلیل روایت ها. یا اصطلاح میشه برده نه نا اکشون نایدن. آیا این اجماع به نحوه تلقیه تلقیه یکی از امام معصوم یا به نحوه تبنیه یعنی تبنیه بقاها استدار بقاها درسته ما تو مسئله اجماع داریم توی این مسئله پرسون حالا اجماعش هم دقیقه نه اون بحث دیگه اون تا اینجا خوب دفت بکنیم ما بحثی رو که تا اینجا مطرح کردیم به اونجا رسوندیم که, که ظاهرا بعد از دوران نصوص اتفاقی بین فوقها پیدا شده حالا این اتفاق آیا در درجه ایست که او اجماع بدونیم یا پایین تر از این دقیقا اجماع نیست دیگه او تلقیه و قبوله خوب دقیق و ارزش این تلقیه و قبول چه به صورت اجماع باشه و حتی اگر به صورت مشایخ باشه مثلا مشایخ تلقیه و قبول کردن ارزش این ترقیه و در تا چه حدیه؟ سوال آیا ارزش این ترقیه و ربور تا حدید که حکم رو ما وصوب و بهش پیدا می کنیم؟ یا نه به اندازه حکمیست بالاتر از اونه به حبر هم وصوب پیدا می کنیم؟ بحث دیگه ایگه از بحث اول مثلا فرکنم در بحثای رنده این دو سه بحث خیلی روشندتر سیل محتضا دقت بکنید و من سلکه مستد کرد از این تلقی برای حکم استفاده کرد مرمون شیخ صدوق و قومی ها از این تلقی تلقیش هم نمیخواد اجماع باشن و, و مشایخ برای خبر استفاده کردن یعنی اگر خبر تلقیه به قبول بشه به عنوان یک دری لحظی حجبه پس زیر بناهایی رو که در بوده به دو شاخه تقسیم شد, شد. یه شاخل هست به قوم در قم این تلقی جز شواهد قبول خبر شد که خود منم مبنام همینه چون در عصب که این مبانی میگید یعنی اگر مشایخ و مساجر معروف یه خبر داشته انسان به اون خبر پیدا میکنه دیگید. خبر به عنوان در این لبزی. سی دو روزه دب کمک خلاصه بود مرادش اینه این تلاشی ارزشش برای حکم خوبه ما وصول پیدا حاکم فلانشی ماست هم نه خبر فلانی که در این با خبری وجود ندارد مگر کلاین مام برود از آن نمی دونیم فقط فاش می کن برودی بوده ات انت تلاشی برودی نمی شی فقط ما از منام می بوده متنی ازش وجود ندارد مم می دونیم باشیم میگیم از منام اون فتواه رو خوره مرسون زرده رو چون ممکنه این فتواه از یک خبر شده که از اون خبر پنج تو مطلب باشه دو تاش به قبول شده یکیش چیم مشکل یکی هم شده اون میگه ما به اونها کار ندارم اون هم روزه که قبول شده اون به فتواه کار دارم این چطور شد منشأ دو مکتب بغداد و قوم و بعد هم به اون دهبه بعد از رسائلی که به شیخ مفید نسبت داده شد خیلی تون نمیخوام خب این کتاب تسقیل اعتقاد که بعداً موجود دیگه اصلا ایشون اعتقادات صدوق رو برداشته نپادی کرده میشه تسقیل اعتقاد من چرا نرسیم که مجلس درتون است انصافا من با شیخ مفید موافق نیستم یه نوع حقیقتاً قاضی ادوی انساب به استاده ولی انساب به علم حساب میشه شیخ مفید گندیش و شیخ صدوق گندیش ولی هر مبانی خاص خودش رو داره من چه ایشون غیر اعتقاداتش باطل من بیان تفسیر کنم؟ پس این جور تعبیر هم به لحاظ اینکه استاد ایشان شیخ حدیث ایشان ازشون طلب حدیث کرده و هم به لحاظ اینکه یکی از بزرگان شیعه است دیگه. حال ما باید احترام افراد رو نمیخelin یه نوع تعددگرایی ببین مثلا در شیعه. و هر حال احترام افراد و تو دیگه خودش مسئله تو همین تفسیر اعتقاد ایشون به شدت قرارا به شیخ صدوق این حمله ها این منشأش کجاست این کجا شروع شد خب ریش های این کار این تلقی هایی که شد این کتاب فخر رزا که نوشته شد با عنوان جامع بین مکتب بغداد و کو و خب چطور شد دو نتیجه داد؟ این دو سنتیجه ولی این شد در قوم خب این تلقی بلکه تلقی مشایه اصلا تلقی کلی هم میمخواد. آمد رکه حجیت خبر شد گفت خبر حجیته در مقدار تلقی بچه حجیت پتواه شد تأمل با خود شیخ توسی هم قدس الله نفسه سعی کرد به این دوزا جمع بکنه اون که شیخ توسی ادعای اجماع در خبر میکنه چرا؟ چون ریشه های این تلقی بر اصوف قردزا به روایات برمیگرده ریشه های بین اصحاب ما با قیاس نیست وایات. باید نمیداریم دقت میکنیم شیخ حسوسیم که پس هر دو مرکتر و کباروهاد عمل میتونم من هم لکن لیکن انصافت اینجور میتن. هر باشه <تصحنت> این توجیه شیخ قابل قبول نیست این توجیه که ما عهد کردیم کاملا واضح شد دو ریشه یه داره دو زیربنای یه فکری داره درست اصل مطلب این بوده که که از شوارت باشه شاهد هم تلقیه به قبول بوده حالا تلقیه به قبول در یک عدد کبیر اسمش اجمع بودشن تلقیه به قبول در مشایر که راه رقصی خومی یه تلقیه به قبول بوده بخصیم کنیم اما این تلقیه به قبول دو نتیجه داده این قسمت های یه فب حسولشیه کمی امام داره ما یک کمی تکرارات نوبریم خسته آن صحیح خیلی روشن نیست و با این ضوابطی که ما گفتیم اگر ان بعد از این اجماعات رو نگاه بکنیم تقریباً تمام اجماعات مدعی در مکتب ما تقریباً تمام چیزی از 80 تا 85 درصدش قابل حل است یعنی نشیادی شده این ماجراش میمونه که نشا شده که تحلیل بکنم اما غالبش تحلیل شده این تا اینجوری دسته تا این به اجماعات بعدی این روشی که کمی بیشتر واضح بکن. پس تا امروز اینطور نتیجه گرفتید که در خود روایات اهل و در باهمان حجیت ایشون با عنوان کاشف یک مفرح نشده. این رؤفقههای شیعه مفرح کردن. و در حقیقت برخود اونها با این مسئله مثل برخود با دلیل خبر بوده. این به این نتیجه ده ای که اگر یک مطلبی در شیعه شد این کاشف از قول امام نه اینکه امام پرموده <تصفيق> لذا شما میدیم تصمیم گیه که این کاشف از قول امامه یا کاشف از وجود یک دلیل است که پیش اونها تازه ما بوده روزه معنی شما ما هم معتبر باشه <تصفيق> این یک مطلب نیست که تحبادی باشه که ما رو بانان تحباد قبول بکنیم <تصفيق>